بسم الله الرحمن الرحیم صورت امشب در یکی از ارکان بنیادین و هنیشگی دین و معرفت دینی هست و اون بحث ابلیس ابلیس ناسی یا شیطان شناسی به کل دین باورهای دینی، معرفت دینی، نگله دینی و زندگی دینی پس گفت سه رکن اساسی داره سه چار رکنی اساسی داره جنبه معرفتی و اعتبادش یکی خداست یکی ابلیس و یکی هم آدمه یکی آدمه در واقع آدم و رکم عمولا به چهار سایی میگن رکم چهار پایه در واقع باید خدا ابلیس و آدم همه این چهار رکن دائمی اصلا معرفتی دینی به میزانی که در واقع ما بلی این چهار رکن قهاته داریم معرفت داریم در دین هستیم و دارای معرفت دینی و منش دینی هستیم ولی ابلیس شناسی یا شیطان شناسی از لحاظی مقدمه بر خود خداشناسی است چرا برای اینکه ابلیس همیشه هجابی خائلی بین انسان خدا دوری میمدازه وزا اول انسان ابلیس و شیطان رو بشناسه تا بتونه او رو کنار بزنه از حصالتش خالد بشه تا بتونه رای خدا رو پیدا کنه و باز ابلیس شناسی واجبتره همینطور که در معرفت عرفانی ما میتونیم که گفته میشه که 999 مرحله از مراحل معرفت و سهلیلالله الله سناسی است هزارومیش به خدا میبیسته و خدا شناسی و برای دیگه میشه گفت بخش عظیمی از خودشناسی هم ایبلی شناسی چرا برای اینکه انسان یا وصل به پروردگار خودش و تحت اراده و امر او زندگی میکنه؟ در غیر این صورت سطح اراده و فرمان ابلیسه تمام ارادهش افکارش احساساتش طرز فکرش برنامه همه ابلیسیه بنابراین میشه گفت خودشناسی از دیلاز همش ابلیس شناسیه نفسه. خب اهمیت این هم و واضحی ها بیشتر صحبت کنیم باز هم بهتر میتونیم متوجه بشیم امروزه متاسفانه بحث ابلیس شیطان تبدیل به قصه شده و واقعا از باور افتدایی اهل دین و حتی مسلمان ها هم خارج شده تبدیل باقعا یک باور سهری و لقلقه دهانه همونطور که خود خدا همونی هم شده و همه مقدسات و باور ها همونی شده و ما در قرآن می که خدا می که کسایی که به وجود شیاطین رو همچنین ملاحق یا اجنه باور ندارن میگن اینا خرافیه اینا کافران هن. ببین کافران یعنی چی؟ یعنی بی خدان از این خارجن. یعنی چی؟ یعنی در واقع شیطان زدن ببین یعنی کسانی که به وجود شیطان ابلویس باور ندارن خود همین داره ب شیطان زدگی شونه. چرا؟ یعنی خود شیطان چنان عقل و رو بینش اینها رو تختره کرده کوروکر کرده اینها رو جاهل کرده تا انسان شیطان رو نبینه در خودش اگه ببینه خودش نجات میده دیگه در باید خودش شیطان میگه آقا این حرفا چیه؟ این حرف با بابا کاریزو بکن اینا خرافاته یا بقول مروب اینا اساطور الاولینه اینا قصه هست بابا این حرفا هم کاشه انسان به که شیطان رو به عنوان وجود یک موجود این کائنات خدا که به قول قرآن تنها دشمن انسان انسان قرآن فرمود که ای فرزند آدم جز شیطان دشمندیگی نداری یعنی هر چه بدبختی و گمراهی و هلاکت و ناکامی داری از شیطان و از بابش اینه که تو مبتلا شیطانی تو چای و های شیطانی و سلط فرمان شیطان انسان بدبختی خب، از این خب اگه ما اینو باور کنیم این جزء اصول ابتدایی همه مذاهب جهانی همه مذاهب جهان اینام رو اینجازه ارکان اساسی فقط اسلام نیست بلکه مذهب اصولا وجود شیطان و باور به شیطان که دشمنی نیستانی خب برای برست در برگردیم مورد برگردیم به چون خب برحال باوره به شیطان بردود ابلیست چون ایک امریستینی باوریستینی بنابراین با ما با برمانی مسلمان برگردیم به قرآن ببینید خداوند در مورد شیطان و عبلیف چه صحبت کرده و چگونه شیطان رو به ما معرفی کرده از این درباره میشیم و بعد سعی میکنید صحبتهای تعدیلی و منطقی و عقلی و تجربی و عرفانی داشته باشیم خب ببینید طبق معارف قلحانی ما فقط مضمون رو میگیم آیات رو نیازی نیست اینها رو همه ما حفظیم. بلدیم اینا. از یه لاز خوشبختانه اینها جز قصه های دران کدکی ماست ولی متاسمونه از باور جدی ما حالش شد خب ما در قرآن مواجه با این تقایت هستیم که ابلیس ملک مغرب خداوند بود از همه ملائک عزیزتر بود مغربتر بود در دردی های این مسئله خیلی بیشتر بست داده شده یعنی عزیز زرزونه در واقع خداوند بود, بود. محرم احصال خداوند تا اینکه یک روز خداوند همین ملاقی جمع کرد ابلیس و شیاطین هم جزی ملاقی بودن به واقع جنسن هم از جنسی ملاقی کرد از زمان اینا کافر شدن از گروه ملاقی خالی شدن و شیاطین شدن و آتشین شدن دوزخی شدن این چیم همین شرارتباه شدن از اون تکبر کردن و خالی شدن از تا این که خدابند یه روز همه جمع کرد گفت من میخوام برای خودم ای درست کنم خال خونم یعنی جانشینی برای خودم میخواهم درست کنم در عالم عرض که بر جای منی بنشینه خیلی هست فرجی بود و ابلیس پرسید که کیه گفت آدم گفت بشر رو میخوام خودم گفت همین بشری که خو زمین در ازن دیگه گونه خب. خب بابا این که جز رز خونریزی و جز ظلم و فساد هیچ کاری دیگه نگیارد که این میخواد دکتر نشینه کنید دیگه از این بهتر نمواد حالا میخای جانشین نشینه خونیت کنید آقا بیمارو نشون کن آقا نمیتی این چه حسابشو پس داده این ما تو قرآن داریم حالا ما زبان خودمون یاد میگیم اون خب این گزینه میده که پس قبل از این خلقت جدیدی که خداوند انسان رو خلیفه می‌کنه، خاص این بنی بشر وجود داشته روزانی. تا دا مون تا موجودی خونریز، خوی‌خوار، وحشی، در واقع می‌ره که یک میمون خونخوار بشری بوده. اینجا. و شروع می‌کنه ابلیس خدا رو نصیحت کردن. ببین ابلیس شناسی همین جا شروع میشه. مثلا اینجا مباستی جمله های بایا رو مباستی دوز ابلیس شناسی با باست سخت بودن مباستی. خب اول که ابلیس باز شروع کرد با خدا بگو مگو کردن. و کاسه داخترقاش شدن و خود رو از خدا خردمندتر و آگلتر دیدن خب بعد ببین چقدر به خدا نزدیک بوده که این قشعه آمد داشته بقیه یه ملایکتر یا تینینا همچین حقی نزادن این اومد شدوی کرد ببین چقدر بعض خودمونی بوده آله. خب ببین در اینجا در واقع میشه کفت اصلا اینجا شروعی شد تکبر ببین اصنج قروح و شروع شد ان برش ابلیس مشتبه شدن و شروع کردن خدا رو نسیات کردن و واسه خدا دیوسازی کردن مشکلی که آقا اینو پای خلیفه‌گونی تمام کار اینا رو دست رو به خاک و خون می‌کشه به بلجاری چه کاری ببین آقا داره خدا رو داره سر کردن مستقیماً مستقی سنجهام مستقی مستقی داره می‌کنه نمی‌ذارم یاد دیدین هستن که این ببین از کی یه دفع این مغرب تکبرش شد. قرورش شروع شد و ببین بوی کف شروع شده دیگه بچه باش دیگه از زمانی که خدا رسمی کنه برای خودش جانشین درست کنه این یک دفعه کفرش شروع شد به سعال شدن ببین کافر شدن شروع شد تا قبل از این ابلیس مرید مطلق بود برای همین ملک مقلب بود برای اینکه مرید مطلق بود خب ببینید جانشون درست کردن خب از ما عرفی و فرهنگی دیگه. دیه وقتی ما میگیم آقا جا من میخوام فنانی جای خودم بذارم خب یعنی چقدر مطمئنه چقدر دوستش دارم و در واقع باست گفت اینجا واقعه واقعه عشق و محبت خداونده این واقعه خلقت آدم در واقع گفت سرآغاز ظهور عشق خداست که در این خلقت داره خود نمایی میکنه این در خدا میخواد اینجا عشق ورزی میخواد بکنه. عشق خودش میخواد آشکار کنه. تا قبل از این حتی کرده بود همه از علم و قدرت و خلاقیتش بود. همه صفات و قدرتهاش و اقتدارش و ویژیهاشو خدا بابا انگار بخواهی رفت بود انجام داده بود. حالا میخواد عشقش رو در کائنات جاری کنه. به فیل در بیاره. و با تن آدم و آدم رو خلیفه کردن و جانشین خود کردن خب این نشون میده که خداوند حکیم و علیم میدونه دیگه به حال ابلیس این اصلا نمی‌فهمی بالا همین خداوند به ابلیس میگه یک یه رازی که تو نمی‌دونی چیه خب ما این بوزه و لافعمون این رازی رو که ابلیس هم تیز بفهمه همون رازی است بود ابلیس چیز واسه من دیگه واسه من خدا وقتی نماش خون می‌ذید میگه این سابقه حالا بعد های باز میگیم مبایسته که با خدا میکنه تمام مبایسته بسیار عقلانی عقلانه سنجیده و همش هم درسته اصلا یک حرف نامربوط نمیزنه اگلی در واقع داره گزارش میده پرونده آدم رو داره جلوه خدا میذاره که بخون حواس جمع باشه نکنین کارو. ولی خدا هم که یه چیزیه که تو خب اون چیز رو ما همه درک میکنیم که اون چیز همون عشق و خب می‌دونیم که خلقت انسان رو خداوند احسن و خالقینه به خودش تبرید میگه وقتی انسان به خودش تبرید میگه ببین بها خداوند با منطق و حق و احساس بشر هست میزانه دیگه ما برای اینکه بسنیم خدا رو بفهمیم ادراک کنیم این میزانی که خود مرضو میفهمیم خدا رو میفهمیم برای این می گفته شده خودشناسی خودشناسی اطلاق برای اینکه خدا با نفس و حس و خوش و ادراک و بشری هست ه که ما در خود تعمق میکنین میتونیم منظور خدا و اثبات خدا رو های حدودی درک کنیم خب ببین وقتی که انسان دست مینگیره یکی رو خلق کنه که جانشین خودش بکنه نه جانشین خودش بکنه که آقاین خونه رو کن این کارباله کن کنه یا کل کائنات رو دارا کن باز من باشه کائنات دیگه یعنی این باز ببین چه واقعی واقعیی باشه و چه عشقی باشه یک اینکه چه باشه دو اینکه چه چیزی خدا خلقی از باشه که چنین تابونی خوب داشته باشه دیگه اون خالقه میدونه بلاخره این میگه داره خلق میکنه انکه تابونی داره یا نداره. در حقیقت تو گفت خداوند گویند که این نظر شخصی من نذاته خیلی ممکنه قبول نوش بچه‌ها میگن اصلا ای این کفره این الحاده اعتقاده من در سایر گفتگو و نوشتنم نشا رو کردم که در حقیقت خلقت آدم و خلیفه‌گزینی آدم مظهر کمال عشق خدا و مقام ارحم او در اینجا داره ظهور پیدا میکنه و در حقیقت خدا باوند داره موجودی رو خلق میکنه که از خودش هم برتر باشه و بر خودش اونو ارجح بدونه یاده دیگه وقتی میخوام خلیف رو کنم یعنی اونو میخوام بر خودم ترجیح بدم دیگه یا این دو ها داره یک مفهوم عشق نه عشق کورد من مثلا عاشقه مثلا همسرم مثلا یه عاشقی بچه‌ام هستن. از بس دوست دارم کار روزیگی خودمو تاییدو می‌دم، اونم جاهله رو هم از زندگی منو می‌ذاره تباه می‌کنه. یعنی اعتماد میافته دیگه مگر نه از فلسف عشق آدم زندگی خود از چشم تاش می‌ذاره، اونم می‌ذاره فاته زندگی زرف می‌ونه، خودی خودنام نابود میکنن می‌گیره. ها؟ عشق الهی، عشق حکیمانه است. ها؟ نیست. سبحان الله در خلقت آدم دو نکته بسیار اساسی مورد توجه یک عشق بروردگار عشق و عیسال و عشق و گذشتیه بروردگار دو اینکه خداوند تصمیم گرفته چیزی به سازه موجود خلق که از خودش هم برتر باشه تا بتونه اون رو بر خودش رجحان بده خلیفه یعنی این دیگه محکمه خلیفه باید بفنیم خلیفه یعنی چی وقت میگیم مقام خلیفه اللهی انسان. در برای خدا، خدا به جای نسان، انسان, انسان با جای خدا، یعنی این خب در واقع این, این که ما میگه او الحمر راه اینه، یعنی مهربان ترینه، مهربانانه، عاشق ترینه، عاشق ها، کریم, کریم هاست خب در واقع میشه گفت در این واقع است که این صفات خدا، این صفات عالی خدا در واقع تجلی بدان میکنه و محقق خود خداوند نفرموده در درها آیه و حدیث که خداوند اگر میخواد انسان خلق نکنی اصلا چیزی رو خلق نمیکرد آه خوب بنابراین اصلا فکر خلقت خدا وقت تصمی گرفت که عالم هستی رو خلق کنه که نایتا انسان رو خلق کنه از توش و انسان خلیفه خودش کنه در اقل باید تو گفتش که ایشون اراده کرده بود یا موجودی خلق کنه که بتونه موجود رو به خودش ترجیح بده و خودش بتونه عاشق اون موجود باشه و باید که اون موجود باشه اصلا با به همین دلیل یعنی به کمتر از این باید گفت در شعن قدرت حکمت او و عزت او نیست که او خواسته باشه دست کاری بزنه که یه کاری تکراری باشه ببینید یه کاری تکراری باشه تکرار عوضه دیگه و عوض در خال خدا اصلا جایی محلی از اراب نداره پس او اراده کرده بود چیزی برتر بیافرینه یک چیزی حتی برتر از اراده و صفات خودش بیافرینه ببین بدعت ببین؟ حتی در اراده خودش خداوند در حقیقت باید گفت اراده کرد که در اراده خودش بدعت انجام بده برای در معرفت امامیه در عرفان اسلامی این باور داریم سخنی از امام صادق در کافیه. کافی که درک بدعت پروردگاه به مسابقه کمال خداشناسی و ترکیه و هر که که بدعت خداوند را درک نکنه مسلمان شیعه و امامیه نیست امامت را درک نکرده چرا برای که کمال قدرت الله راهیمینی و عشق فروردگار و کمال بدعتش انسانه و کمال این انسان انسانیست که به مقام امامت رسیده. بالا همین گفتم میشه که کسی که بر در فروردگار ذکر نکرده باشه اصلا امام امامت رو درک نکرده و اصلا خدا رو در حقیقت نشنخده خدا رو گونه که قدرش و حقیقت نشنخده خب برگیردین به صحبت خبقت خب ابلیس روی کرد به کم کم در رو بر خدابن طبق آدم خدا خب، اتفاق جدیدی که افتاد این بود که از روح خودش در این آدم خونخار دمید یعنی این آدمی که قبلا خونویدی میکرد در عالم عرب در واقع گفت صاحب روح نبود میشه گفت یه بشاری بود یک میمون بسیار قهار و بسیار باهوش ولی وحشی و کافر و شقی در حقیقت میشه گفت با باقی دمیدن روح طبق کلام قرآن خداوند از روی خودش در آدم دمید و کل اصما و صفاتش رو هم علم خودش را هم در انسان نهاد در انسان نهاد. و بعد به همه گفت خب حالا برای که ببینید که کسی که به عنوان خلیفه من برگزیدم آیا خب ببینید که واقعا لایق شخصی هست یا نیست امتحان کنید. هر کسی هر عارضی داره، شر که تا نمی دونسته سر خودش رو سال کنه. ببین؟ از خودش سوال کنه. اما ملایق اصلاح خودشون از آدم کردن و آدم بر همه اصلاح نهان و باطن اینها آگاه بود و علم داشت ببین؟ علم باطنی داشت رازدان بود خب؟ پس در واقع باید گفت آدم عارف شده بود ببین؟ عارف بود عارف یعنی کسی که علم باطن داره دیگه علم لدونی داره دیگه یعنی در واقع به زبان ما باید گفتش که به کمال عرفان رسیده بود و راه معرفت نه افتیم، راه خودشناسی یعنی راه شناخت اسفار وجود خود و کسی کی اسفار وجود خودشه بشناسه اسرار وجود کائنات رو خواشناخت، همون طور که مولا می‌فرما که خود را شناخت، همه چیز را شناخت. هر کی خودشناخت، هیچ چیز را نشناخت. نشناخ. در واقع باز کسی از ذات آدم ها به کمال معرفت و, و خودشناسی و خداشناسی و جهان شناسی رسید روز به همه اسرار رو می‌دونه. این بود که همه سجده کردن خداوند هم عمد کرد که سجده کنید این رو و همه سجده کردن الا ابلیس عبا کرد با این که دید ببین این هم دست دیگر از خودشناسی ببین لجبازی اول سوال داشت ظاهران داشت گرسوزی میکرد برای خدا و دستگاه اللهی که آقا این آدمی رو خون میکنه به فساد میکشه آقا بلکه این این موجود دیگریه این همه علم میگار باید هم چیزهایی داره که شما نمیتونید ولی اینجا خودت درگر میتوان کنید ولی با اینکه باید هم دید دیگه لحظه بازی دیگه تکبر یعنی احساس کرد که یک مخلوق دیگه بیدا شده که در نزد خدا خیلی عزیز داره خلیفه گرده جانشین خودش میخواد بکنه فسادت بخصادت, بخصادت اینو کر کرد باید شروع کرد جر رو بحث کردن با خدا اینا مراحل ابلیس دیناسی خب. این ابلیس دیناسی به چرا درمان مخورد؟ چرا؟ برای این که آدم بدن شروعی کرد بر ابلیس بدن شروعی کرد بر آدم رخ نکردند رستخ کردن و او رو گمراه کردن دیگه و های خودش رو کفر خودش رو تذریخ کرد به آدم از طریق حفظ خب. این که نگه ابلیس در واقع کم کم ابلیس دیناسی خودسناسی ماهه. یعنی او رو در خودمون بشناسیم برای اینکه رو رسوخ میکنه اما در احادیس داریم که شیاطین بر قلوب وارد میشن بر دل وارد میشن بر دل وارد میشن یعنی چی؟ خب دل کانون احساس ماست دیگه یا؟ بر اندیشه وارد میشن بر نفس وارد میشن خب اندیشه ما، ذهن ما، دل ما کانون ادراک، احساس، یا فن و تصمیمگیری و عمل کردن ما خب وقتی دیگه بر نفس و, ذهن و قلب ما ولی شده در واقع در احساس و امیدیش و فهم و ادراک ما دخل میکنه در واقع به جای ما ما در واقع احساس اون رو احساس خود ما احساس میکنیم در ما ایجاد احساسات چه خاصی میکنه که احساسات اونه در ما تولید ایده ها و افکاری میکنه که مال ما نیست در واقع یعنی میاد ما رو چکا کنه تسخیر کنه که ما به جایی که خلیفه خدا باشیم، خلیف باشیم خلیف ابلیس باشیم که ما به جای که خلیفه خدا باشیم و بنده و مرید خدا باشیم بیاییم بنده و مرید ابلیس بشیم در حقیقت بعضی گفت که ابلیس شروع کرد رقابت با خدا خب میبینیم دلایلی که باز ابلیس میاره بین نا همش مراحل ابلیسنی میگه که باز بهان میگه که اینو برای چی میخا خلیفه ببین از گله از گله بدبوی ما فریده شده من از آتش نابم آتش ناب در واقع میشه که مثل نور میمونه آتش ناب این نوره یعنی در واقع قرار کسی خلیفه بشه من بست بشم این را بشه من بیاییم سرزه کنم ببین قیاس ظاهر بینی اینم درست دیگری از ابلیسیناسی قیاس و قیاس به ظاهر کردن قیاس به نفس کردن خود با دیگری قیاس کردن این همه اصرای لدونی در آدم بود این طرف ببین اون رو به حساب نبود زر اصلا ندیب حساب کرد آه؟ میگه آقا من از آفتش نبود اون از گل ببینیم این چکل خب بلا مثلا مولانا این فرماد که منطق قیاس از یه بیسه ببینیم ما میدونیم که علم منطق و. در فلسفه اون شاخی از فلسفه منطق و بنیاد اصلا فلسفیدن و بعدا این بنیاد منطق و افاص ریاضیات هم شد و کل فلسفه و دانش که موردوع بر جان حاکمه از این پیز اومده این بر منطه ریاضه که یکی از بزرگترین بنیان گذارانش ارفی هستش میگن برای اون به منص می ریافشه خب همه این کتا رو منطق خونده هم می دونستان اصل اول منطق قیاسه خب این از ابلیسه ببین این از ابلیسه خب بنابراین منطق ابلیسه منطق قیاس قیاسی اندیشیدن و نتیجه گیری کردن اندیش ابلیسی اندیشیدن و گمراهیه داره باقی این هم درست دیگر خب بعد میاد همطور که قبل هم گفتیم میاد گذشته و در واقع پرونده آدم رو واسه خدا رو میکنه که آقا این در گذشته این همه خون ریخده این همه جنایت کرده بر روی زمین آه؟ آقا گذشتر چه کار داره؟ این الان خدا درش رود میده و این همه اسرار رو عرب در نزده به حال به ببین خب. این هم یک نگرش و استدلال ادریفی طرف حال واقعیت کنی میشونه ایمینه که آدم الان به چه مقام میرسیده میده گذشته میگه آدم فاسدی بوده این ریز بوده ببین؟ تاریخی گری ببین بیان کنیش میشه گفت تاریخی گری سابق پرستی و اجداد پرستی نزاد پرستی تاریخ پرستی اینم میشه یک شاخه دیگری از ابلیسیناسیست تاریخی گری خب در واقع میگه سابقه من چقدر خوب بوده من چقدر مریض دو بودم سابقه این آدم چقدر خراب بوده ببین این تاریخ که از خودپرستی برمیسیده همین از کفرانه همین دلایی میاره برای اینه که یه حقیقت آشکاری رو انکار کنه از کفرش، از نحقیشه که متوسط به این شیبه ها شده ببین پس منطقه غیاف و منطقه تاریخیگری سابقه پرستی یعنی اینکه یک چیزی چرقی داره یا نداره حیقتی آشکارش رو ندید بگیره به گذاشتاش رو بادفاین کنه تاریخی داری خب ما میدونیم موزه فلسفه تاریخ و تاریخیگری یکی از رایش ترین نگلش های فلسفی و فکری و اجتماعی و فرهنگی در جهان شده نامه همه ایدلیسیت. خب بعد همینجور شروع میکنه مشاجره کردن با خدا تا جایی که خدا میگه درو باید نکن چرا به ناحق جدال میکنی تصدیق کن نگه کن، نمی کنم و ابا می که لعنت میشی از درگاه من تا به جهنم میری یا باشه من بیایم تا رو کنم، مخلوق تا رو سجده کنم ابدا امکان نداره، ببین خب این همی دیگری از جا جانمازات کشیدن بقول معروف کاتولیستر از پاپ شدن برای خود خدا درسوزی کردن ظاهران خدا پدستی یا تویی جا ابدا تو خیلید گفتی تو از ما نباستی به پدستید خوب من نمی پرستید حوا قبلا گفته بودم به من نفرستید انت عمر الله آدم نبود. حالا همون که حرفی که من زدم یه حرف میزنم. شما این من نافراستید؟ من میگم این سجده کن. میگم اهو. میگند احید الا بالله. شما هو اینا گفته بودید، نه از ما نافراستید، من نافراستم. فقط تو این نافراستن. ببین. دعوی عشق دروغین. و غیرت و تعصب مکارانه از حق بازی اسفات تکبر و انکار. ببین. خنا بردن به خود خدا برای در رفتن از امر خدا به اسم خدا با خدا ددر کردن به اسم عنوان اشق به خدا و پرستش و توحید به او اوتن در نهادن و آدم رو سوشده نگردن خلوی؟ این یک درست دیگری دیگر از دیگر شناسی آدم که خلیفه خدا خلیفه خدا به زبان ما ما به امام ها میگیم خلیفت الله آه یعنی امام رو انکار کردند. ما در تاریخ داشتیم آه؟ کم نبودن در تاریخ که مذاهب بسیاری از ملایان مذاهب آه؟ در یهود نصارا در اسلام در همه مذاهب بودن هر کار که پیامبری امامی یکی از اولی الله شکار میشد آه؟ او رو چکار میکردن. به اسم خدا و خداپرستی و توحید او رو محکمون و دارن ببین؟ اونو می کشتن هم درون مسیر رو مصطوب کردن مسیر رو به چه جرمی؟ به جرم کفر اونو مصطوب کردن هم داری امامای ما رو به چه جرمی؟ آه کشتن هم رو و همه اینا کشتن شما از عزیزین خارج شدید کافر مدهت هستید دیگه آه کشتن یعنی به اسم خدا خلیفه خدا رو کشتن به اسم خدا که در واقع این خلیفه خدا همه آدمه این هم آدمه و همین امامای ما یکی از اسماشون وارث ادمه. ما یعنی نواقصا است که آدمی ازو برسواذن. اونا مثل از آدم خلیفه هستن. خلیفه هستن این چی؟ سایه روی خدا هستن، صاحب اسرار الهی هستن، عارفن، اون علم لدونی و جان و رازبینی رو دارن، علم باطن دارن. ببین امام یعنی این خلیفه خدا هستی که این ویژگی رو داره. اینا گفتن ناغافرم و ما خود خدا رو این فرستی. شما ببین ما چابیه وزینه ها تاعت کنیم چابیه وزینه ها تاعت کنیم خود خدا هستی که ببینی اینم پس یک ابلیسیتی بسیار بسیار پیچیده‌ای یه دیگه کاسه داختر هست بودن آه. درست دیگه هی که ما باز میاموزیم در ابلیسیناسی که این خودشناسی ما، همه این خودشناسی ما هست ببینیم مهمترین ویژگی ابلیس کسیه که به اسم خدا داره با خدا میزنید این باشه. برسه توحید داره از به خدا سرفیجی میکنه و با خدا داره جلو میکنه تا خلیفه خدا و دوست خدا رو و کسی که خدا رو دوست داره رو تصدیر نکنه بعد قبول میگه ناید نکن من به زبان خودمونی میگیم این مفهوم در قرآن در آقیس میری به جهنم و گو باشه گو میری بباره چرا نه ببین تاک کردن از فرزش. باشه در واقع خاطر رجوع من میرم جهنن ولی قیلت رو سجده نمیمونم امکان نداره من ذریع سر رجوعه کنم من یوم فقط روش کردم و بعد خداون میگه خیلی خودجه بحثت همون شد تو دیگه محکوم نیده, نیده. تموم از درگاهی دور شد هم تضایه دور میشه درگاهی به میره کوسش که چی خودا دیگا رو چون گوزادی، اون اقوا کرد. اون گوزید. تا بقى ذات دیگیری که از این جادوی بوسینی نامی برای همین خیلی از خلق و خواهی ابلیس رو ها، فخو و خوی زنانه میشه تشبیه کرد. حالا بعداً در مورد حوا و آدم اول میرسیم که چگونه ابلیس از طریق حوا به آدم وارد میشه و زندگی و رابطه بر آدم اول رو تباه می‌کنه، باتش می‌کشه. ببین اونجا ناسی ازن ابلیس بود و خیلی خیلی‌ها رو الله صفات شبیه زن می‌دونن. اصلا شیطون زنانه نماز می زبله میز الله وایت عام می فرنگ که امه بشری ها به ابلیس رو نصفه زنانه می میذاره خنک و خوی زنانه این شکلی این در واقع نازشو که میگه باشه من میگم به جهنم به خاطر تو میگم به جهنم از فرد عشق تو این در واقع میگه آقا جون به درک ها یعنی از من جدا میشی آقا یعنی طلاقت میدم ها در واقع اینا از در به درک میگه باشه و بعد دیگه که کار تموم شد و اگرشت به خدا تومت هم زد خدایا تو منو اغوا کردی منو گول زدی منو گول زدی که من این با تو در و جهنمی شدم و رابطم باشه از دست دادم و رجم شدم اصلا آه لنه شدم تو منو گول زدی اقواه کردی فریب دادی تو میسنه داشته باشی؟ یا آدمایی که با انکار حضیقه آخر سریع. عزت و شرف و رحمت خدا را از دست میدن میرن به جهنم میرن میرن به یه ازاد میشن می تا دا از رب خودشون از خدای خودشون از زمان خودشون از محبوب خودشون از معظم خودشون تمتخاره میشن میشن شما رو ما رو زدی ما بینیم و زفتدید بینیمال فرید دادید, بیموزف دادید. بایدان تعمتی با خدا نهایتا تعمتی با خدا که تو فرید دادید نا ازن خدا میاد دلو تیوهی می کنه اون که باشه پس اثباتم هم تا قطع نمیکنه. کنه که که هلا که من به این زنی بشتشاه بیا تو من یه ازازارو بده تا من آدم و فرزندان آدم رو من امتحان کنم جای این ها واقعا خلیفه تو هن آه. تو رو خالتا می فرستن گفت باشه این به تو این زمان می دهن به تو ده که امتحان کنم. اگر مطمئن باش، پیشوپر خداوند کو، کوصا امر و باز ز کمران کومرامو اینو باز دزه وایز میگونی الا باذ الله المخلصین. تو از الله المخلصین یعنی پرستاندگان خالص. زبان فارسی خودمون باز الله المخلصین پرستاندگان عاشق. یعنی علاوه کلمه عشق در قرآن مطالعه با اخلاص. مخلص یعنی عاشق، یعنی بی‌راش. ها؟ تا موقع خوب درستم است دیگه. خدا خود آش اینجا قاهت عشق و با آدم که او را رو ورده روی خودش از صورت خودش به او بخشیده از روح خودش در او دمیده تمام علم و اسماء کمالشان در قلبش در ذاتش نهاده او رو خلیفه‌ی خودش کرده خب کسانی میتونن از وابسته ای باشن و این حق رو کنن که اونا هم خدا رو عاشقانه بپرستن دیگه ببین عاشقانه بپرست مخلصی پرستندگان عاشق اونها رو به واقع میشه گفت لایق محبت خدا هستن و به محبت خدا جواب دادند در حد توان خودش خب نبر نهایت ابلیس سناسی در این مرحله به اینجا میرسه تا نفردازیم به محله بعدی ابلیس که داستان حضور ابلیس در کنار آدم هواه هست در بهشت بنابراین تا اینجا به جنبندی بکنیم از حسایل بنیادی ابلیس که همه اینا رو ما در انسان ها پیدا میکنیم ببینیدین صفت های ما بگیم همین در انسان ها که هزاران سالی که ابلیس در نفس بشریت داره کار میکنه و فرهنگ تراشیده دیگه وقتی ما می حسد خب یکی از ویژگی های دیگه خب این ابلیسیت نفس انسانه اینا استفاده انسان صفات خود آدم نیست آدم خلیفه خداست حامل روح خداست حامل اسرار خداست همین علم خدا در نزد و محل سجده ملائک اینها آفتها و فسادها و القاعتی که ابلیس در انسان درست کرده یاد باشه بس این نه باید بگیم حسی صفت طبیعی برای نه خیر این ابلیسیت ها. این مال انسان نیست در خلقت انسان اینها نیست اینها عاریه است به انسان چسبیده شده عوالز بیماری های روح و نفس انسانه خب اینا اسمی به این فرمان سیزده سارده تا مورد میشه تا همین جای بحثی یکی حسد یکی عدم درک ابلیس نسبت به عشق عشق نفهمی ابلیس. محبت نفهمی ابلیسه ایسا نفهمی ابلیس. سوم قیاسه منطقه و منطقه ظاهر ظاهربینی و ظاهرفلستی پنجم مشاجره کردن جدر کردن جرار بودن ابلیسه بگو مگو کردن بیهوده و اصلا عمدن به هیچ دلیلی کاسی داختر آش بودن نسبت به خدا و از خود خدا نسبت به خدا با غیرتر بودن به اصطلاح و در واقع باید گفت توی فرهنگ بشنالی جانماز آب کشیدنه معروف به ضرور مسئله کاتولیتر از پاب بودنه بعدی به اسم خدا و تحریم نام دفاع از خدا و توحید با خدا جذرگردن و کفرانگردن ببین اینا در بشار ببین نه اینا همه سفت های دوستیه بعدی ادعابت با دوست و خریفه خدا در حقیقت باید کفت همه این تفایت سیزده سازگانه که الان داریم میگیم ما معلول ادابت ابلیس با خلیفه خدا یعنی او دشمن این بود که خداوند خلیفه و دوست داشته باشه او ننیخواست خدا دوستش باشه اون می‌خواست خدا تنها باشه ببین نه خدا دوست داشته باشه ولی داشته باشه ایمان داشته باشه محبوب داشته باشه ببینید ادابت او تمام این صفات‌ها ها از ایلانشو گفت معلول این اصله او با بیان دیگه میگه ادابت او با خل... مقام خلیفت اللهی انسانه مقام خلیفت اللهی انسانه مقام امامت انسانی، خلیفت در فرنگ اسلامی اسم راهیرش شما مقام امامته بعدی تاریخیگری گذشته پرستی آبا و پرستی اینه که داریم بعدی شقابت و بازی ابلیل با خودش نهایتا با آگاهی کامل خودش مصطفی میکنه به جهنم که ببین این زادی که به جنون افتاده شقاوت ابلیس لغوازیش با خودش ها در واقع میگه گفت نوری از خود انتقام گرفتن خدا تا قائله لازم میگه توبه کن میگه تا میرم آقا ببین بعدی تومدی به خدا تومدی دادن به خدا ببین اینا در ما ها نیست این سرنوشت آقا الان نمیگه خدا واقعا عجب برنامه برای سر کار گذاشته ها ببین نسبت میزنیم دیگه ما کارمون درست بود خدا هم اصلا به ما ناروز زد مثلا با ما حال نکرد ببین ما رو کلک زد ببین این نسبت‌ها رو میدون بعدی ناز کردن واسه خدای ببین نابود کردن میرم به جهنم حالا که این دوره باشه میرم به جهنم باشه فکر کردی این معبده خدا در واقع میشه که به allele خدا استفاده کردن ببین ناز کردن واسه خدا و امر دیگه اونجوری مسئله بدعت تباقیه مهوری ترینش میشه کنم افراز همه این سفات ابلیسی ابلیسیات و کفر ابلیسی خب ما که خدافن میگه که او اول بود کافر شده این منیانگودار کفر بشر از اوست آه. کفر یعنی انکار آگاهانه با حقیقت ببینیم مفهومش اینه اون کفر کاملا ببینیم با آگاهی یعنی از جل نیست با آگاهی کامله یعنی این با آگاهی کامل با حقیقتی که تو میدونی حقیقته وقت درسته تو دار کردن و بدعت گفتی که در اسلام و فرهنگ شیعه و امامیه یکی از مهمترین مباحث هستش بدعت در حقیقت باز گفت لابن تا قبل از اینکه انسان خلیفه کنه همه چیزش برای خرقتی برای یک روالی بود که بقول مارو منطقه و مغول بود تس قدرت قهاره توحیجی فروردگ ایشون اومد یه بدعتی در خداوندی خودش در واقع انجام داد حالا دیگه بدعتی در توحید در واقع میشه که انجام داد ببینید این بدعت عشقه این بود که اومد مخلول خودش رو بزر خودش نشون. بزر خودش نسون یعنی بزر یراده خودش نشون دیگه این همون مقام امامت خب این که مثلا در میراج ما میخوایم که راوند پیانبر میده که پیامبر نسبت تو بر من نسبت من به علی و علی ببین امام خلیفه الله یعنی همونطور که پیانبر تو مورید منی آشار منی من مورید علی هستم ببین خوی به دست هست دیگه مگه نه نسبت و ابلیس به دست رو بره نمیتا در واقع مشکو از یه از یه لحاظ منطقی واقعا میشه چه بسا حق رو با ابلیس از نگاه ابلیسیات می‌خوام به بیستات. از نگاه ابلیسیات. می‌بینید؟ در واقع کاسه داغدار بودن که بابا چطور خداییت خودشو داری؟ ها؟ شیرپا داری می‌ذاری؟ چرا این مقام رو می‌خوای به این طرف دیگه بیدی و خودتو کنار می‌گشید؟ ما می‌دونیم دیگه وقتی که در روز ششوم رو خلقت آدم رو خلق کرد، ما خدایان می‌گیم رفتون بر آتش نشه، و فقط داریم نگاه می‌کنیم، نظاره می‌کنیم، هیچ کاری نمی‌کنیم. ما باقی کارا رو همه رو معطل کرده به کی؟ به خلیفه ی و اما در قرآن یه دسته مورد دیتا اونجا که ذهنم هست و مفتولم هست علاوه بر این سیز در چهار دستا صفت دسته دیگه هستش که در آیات دیگه زیر شده به, به ابلیش نسپدده شده که این صفات مربوط به ارتباطش با آدمه که چگونه حالا شیطان به آدم نزدیکش. خب ببینید ابلیش خود لغت ابلیش آه؟ از بوس یعنی مایوس شده ببین فرند میگه اون اولین مایوس شده بود مایوس از رحمت خدا طبق از رحمت خدا مایوس شد که به صفابت افتاد نصف به خودش مایوس شدن یک معادله شیک سو فزدی یعنی رحمت خدا از میوسش رفت با این همه شغاب... آقا که با خدا کرد آه؟ و دشمن خودش شد شقی شد شروع کرد از خودش انتقام گرفت ببین این ویژگی است از این سفر خوب میاد آدمو چقدر زیاده شقیه شدن اصفاد خود و رحمت و نجات مایوس شدن یکی اینه خب در قرآن داریم که حالا چگونه بگیم پس این ابلیسی که یه منتقل میکنه. خوب. این اینه دیگری که باید اصفاد چاردامی پوندامی می میشه. و بعد در قرآن میخوانیم که ابلیس هیچ کالای ابلیس تنها دشمن انسان ابلیس شیطانه و شیطان برای انسان هیچ کالایی جز غرور نداره یعنی میخوام این چگونه میاد. ابلیس به انسان نزدیک میشه، انسان عاشق میکنه و این صفات و انواع اخسان این صفات رذیل و کفر و رو به انسان منتقل میکنه چگونه؟ از طریق غرور. ببینید این همه این صفاتی که ما خوندیم در 12 فصل رو، در واقع از اینجا به که محصول غروره. به انسان مغرور میکنه. از این طریق دیگه با انسان والد شده این انسانی که مغرور شد ابلیسی که راحت با درش والد میشه شدن یعنی قرار شدن به خود به خود قرار شدن قرار شدن مغرور شدن در واقع در فرهنگ فارسی مترادفش در قرآن که غرور مغرور شدنه در واقع باید کفتش که این خود خودفریبی خود رو زدنه. مثلا خوزی من فرض خون الان اینقدر بدهکارم فرض خون پنجا ملیون ولی ساب هم مثلا دسته ملیون بیشتن ندارن آم؟ چار روز دیگه هم مثلا سر رسی این نمیخوایم من میزونم خوب ما هم بایدی فکر چار روز دیگه بایدی یه فکر بکنم میگم بابا آبادش که بابا آباده درست میشه مهم نیگه بازی این خود فریبیه بحثیت بحثیت خود چیز فریبی فریب دادن مغروض شدن یعنی یک حقیقتی رو یک واقعیتی رو از جلوشش خود فرداشتن و خود رو کور کردن خود رو کُر کردن ببین ابلیس این شکلی بارد میشه. یعنی نیاز مشهواته تو رو ناقص میکنه نفله میکنه نسبت به واقعیتی اصلا نسبت به واقعیتی از وجود خودت میاد تو رو قفل میکنه یعنی مغروض شدن در واقع میشه گفت کورو شدن نسبت به خود نسبت به واقعیتی که انسان داره خود رو ندیدن ها خودش مسئولی از غرور با آقا، دیگه غرور. همنم که غرور علمی، غرور دینی. ببین این غروری که ابلیس داره، این تکبری که ابلیس داره، غرور تکبری دینی ها آدمون باشه. ما دید این که تمام چگونه های ابلیس با خدا همه از ذلفت دفاع از خدا و از دین بود دیگه. اما بعضی ذرا عارفانو، آلمانو توجیه داره با خدا میکنه. می دیگه آدم آقا خوندیز بوده. یعنی چی؟ یعنی باز خوندوزی شده. ببین در موقع با دفاع از خدا و حقوق الهی و معارف الهی داره در واقع کفر نورزه ها این در واقع نیشی در واقع نفاق نفاق آه. چقدر این روز زیاده نفاق به اسم دین در واقع با خدا جنگیدن با واسه دین دین رو زیرفا بذاشتن متبصر شدن به یک سری از فروغات دین برای زیرفا گذاشتن اصول دین متبصر شدن به یک سری از احکام مشتبه یا متشابه یا این سر احکام مشکوک یا فرعی برای انکار و اصلا زیرپا گذاشتن محکمات دین حکمتها و معارف اصلی و اصولی ین دوقه همین کار داره میکنه خب و از جمله مطالب دیگه که در قرآن ما داریم که چگونه ابلیس انسان نزدیک میشه شیطان نزدیک میشه که میراس شما را از آینده از فقر و مرگ و نیستی و گرفتاری و بدبختی آینده می ترسونه شما را مخصوصا کلمه فقر اومده در برای از فقر و آینده فقر بقیر مثلا اختاری نیست فقر این یعنی دیچیزی نداری، گرفتاری، چقدان، ها از گرفتاری و بدبخت شدن در آینده می ترسونه اگه به این وقتی دارید میرید در پای دینداری آقا گرفتار میشید و ضاف میشید و میشید آقا بیکار میشید خلاصو مردم خلاصه کار شما بدن آقا میگن نمیذانن ببین ترسوندن نه در دین وابسته را فرقی میشید یه آنگاه که شما ترسوند اون وقت شما رو دنبال خودش را رواننده واسه شما از این اول شما رو میترسونه بعد در شما الغای الغای آرزوهای رو میکنه ببین خب دیگه ببین اگه همینجوری پیش میرید آقا دور دیگه گوش نید خب بله آخ خیلی خوب حالا من برای برنامه دارن بیا آقا مثلا یه وام بگیر یه پروژه پیاده میکنیم آقا کلا حالا رو برمیداریم اونجا وام میگیریم اونجا زدوبند میکنیم اونجا پارتی روشه فلان یه پروژه رو میندازیم که دیگه آینده‌اتو چیکار کنین کنیم. تعمین کنیم آه؟ مثلا طور بیمه میکنیم. دین در واقع اول تو رو به بیمه وحشت میندازه، از آینده، در از رحمت خدا و عز و قدرت خدا رو واقع مریض می‌کنه. در واقع در طول به خدا بعد بین میگه به شوزان میندازه. آه؟ میندازه باید من من ها؟ میندازه بعد میگه خلق بیا ببین من تو رو بیمه می‌کنم. اما وقت اون بیمه آرموها و افقال ها روزی‌هایی که چطور میگه به اونجا میندازه، ما برای آینده در واقع میگه اینا هم از البته خودی بیمه ایجاد می‌کنه و بعد وقت بیمه تل می‌کنه، خیلی جالبه. گی بیمه کنم، مصون، ها؟ حرفیه. پروژه میده تو کلهت رو. پروژه های موهاز که تو را با آتیش بندازه. اینم مورد دیگری است که وارد میشه. یک مورد دیگه هم در قرآن که گرفتم، هست چیه که. خدای خداوند می‌فرماود که شیطان به امر خدا به هر آدم کذاب متکبر تو تومزنی نزدیک میشه. ببینید ببین با شیطان به امر خدا میشه. خب، ما یادمون باشه که نهایتا خدا به او معمولیت داد از میشه گفتش که ابلیس رسول خداست هست رسول خداست که تا اخلاص انسان ها را بسنجه ببین آیا اینها لایق این هستن یا نیستن که خلیفه خدا باشند؟ و پس به امر او با آدم های تومت زن اونا که حقایق رو انکار میکنن به کذاب ها نزدیک میشه تا چگاه کنه اونا را تبقیه سلام خدا تا اونا رسوا کنه ببینی رسوا کنه بعد نهایتا ببین ابلیس خودش در خدمت همه خدا آدم که حقیقت این کار میکنن دروغ میزنن توبه میزنن رو اونا رسوا میکنن انتراک کفتو بودن اگه اندرشون در میاد دیگه نما در میاد تا بل کنن توبه کنند. در خدمت ببینیم پس نهایتا ابلیس هم در خدمت امر الهیه و در خدمت خ ابلیس ها خودش خوده اداوت داره با انسان ولی ما بازهب سنبیت نداریم که جهان دو بخش باشه و از خون خیل و شرق نمیدنم خدا و شیطان نه ابلیس و شیاطین حتی اراده امر و حکمت الهی قرار داره و به امر خدا هم به دیگران نزدیک میشن که اون هم جنبه در باقی خب نهایتا ابلیس باعث میشه انسان رو به دوزخ میمیدازه دیگه خب نهایتا دیگه اونا ابلیس رو تا یه چیز پیدا و دوازده وارد میشه من میشن و اونگاه ابلیس اون بالا یهو گفت فرزند دادم که از رب به خود تلگی نه و با احساس کردی ببین ساز نشه میکنه ببین از شما این معبود خدا دیگه اصلا وظیفه ش این بود اون باشه ما شیطان ابلیس که نمی ما فکر دور خور چیز شدی غو و تو میاد میاد در تو میاد افکار مخوف میندازه بابا دو <سنجو> بسیار لطیف و تودل بروئے بسیار دل چسد خوشش خودش میاد خیلی باحاله ببینید ایبلیس خالص بسیار باحال القاتش ایبلیس نمیگه که پاشو واسن 100 خورو پاشو مردم برو بالا نه ابلیس اوه، چی می‌خوای می‌خوای خیلی لطیف چیزی باهات. این بعد یه مو اهل حالیمه مثلا. ما قدی مینا می‌خوام چه کار کنیم؟ خودمون دل خودم و خودمون گوش به راسی ویلوم می‌یام قرب می‌کنیم. فا؟ هوادینی جو تماخوری کار دیگه ولی توجیهاتی که میکنن خیلی باحاله. این یه ویژگی شیطان. قلوبشون شده واسه شیطان و در واقع اینا خلیفه شیطان شدن. آ، بعضی کی بعضی بجای خدا نشسته بودند، بعضی شیطان نشستند و فرمان بدرای شیطان نشستند. یه باشه، شیطان، ابلیس، بسیار ملوز، زیبا، منتقلان داریم میگه. یکی از کارهای شیطان، خودشون نمیدن اومد، شیوه هم از تو انسان اینه که اعمال زشت انسان تو میاد زیبا میکنه با ببین. نمیاد زشتی ها رو آسیب کنه که واقعا زشتی ها رو ببینه خود در میده میذارم که نه. اتفاقا تو کاری زشت میکنی یکم کم بترسی که این بابا چه کار می‌کنه میگه نه آقا نه ذره خوشگل میکنه رنگ و اینا نقاشی نیست که ابلیس نه با افکار و ایده ها و توجیحاتی که بد میده ها تو می اون رو ترکیبش می‌کنی میکنی عاشقانش میکنی جنایت جناش رو اسمش می‌ذاری عشق حالا دیگه جنایت اسمش می‌ذاری آقا من دارم خدا به مردم؟ با واژه الفاظ ایده ها. ابلیس اید مجموعی از ایده ها و اندیشه ها و آرمان های لطیف و تو دل و به قلومه باید سرکاریه خب این جنبانگیت قبل بود خب برسیم به سرآغاز معامله و ورود ابلیس بر نفس انسان که طبق کلام قرآن در بهشت دوام بود آدم خلال شد از صورت خداوند صورت داشت از روح خدا روح داشت و از علم و اسما کلماتش علم داشت و خداوند او را در بهشت بر این و ابدی خودش ساکین کرد فر اینجا باش تا ابد باش و هر کاری دوستاری بکن همیشه. و بعد برای اینکه تنها هم نباشه و در این حال مقام خلیفت اللهی او را براش کرده باشه برایش یک نفر دیگه یک دوستی هم خرق میکنه اسم حواه اینجا سراغاز واقع است ما اگر بسنیم رو و خلقه رو و رابطه آدم حوا رو درک کنیم و نیز اینکه چگونه ابلیس بر این رابطه وارد شد کل دین رو تا اعماق ذاتش رو نتنافمی دین و بلکه کل تاریخ بشر رو درک کردیم و بلکه بقایت خودشناسی دینشناسی شناسی نتنافمی دین شناسی. دین شناسی دین. از این محفظ رو این اقلاق بیشتر دقت بکنید اینا بردین این اینکه خداوند فهماد که ای برزندان آدم بدانید که جز شیطان دشمنی نظاری خب چرا؟ برای که اون با آدمیت بشر مخادث بود آدمیت بشر یعنی مقام خلیفت اللهی بگر نه که خدا که او خلیفه نشده بود حامل روح خدا صورت خدا و علم لدنی نشده بود که ابلیس باوش با مخالفت ندارد یک ونی وحشی بود تا یک موجود وحشی بود بر داشت همطور که روی داشت خونگیزی می‌کرد ها همونطوری که بخشادین یاد داشت‌ها یه مخلوق خونریزی می‌کرد و ونی اون ندارد با نذاроде حسن دومینام نمیده بلکه نه هست که خودشون دومایش شیطان میاد ببین ابلیسم بالا کسا نمیاد واقع میره ها که دردیه و معنا و معنویت دارن که اینها رو قافل کنید استادمون باشین این که خودشون کافرند و به کمر خودشون مفتقرند اصلا باید خواهی میدوند خودشون دارن میرن به جرنم دیگه او دشمن مقام خلافت اللهی انسانه دشمن روح خدا در انسانه دشمنه جمال و کمال و علم و و صفات خدا در انسانه دشمنیشم با آدم و سجده اینجا رو او و ما دیدیم که تنها سندی که آدم ابلیس آدم در مقابل ملایق حقانیت خودش رو ثابت کرد که ملاک سجده کردن این بود که علم لدونی یه خودش رو عاشقاه کرد علم باطن بود که اسرار رو می دانست این آدرس چیه؟ آدرس مقام خلیفت اللهی تحقیقت بایستی گفتش که راه رسیدن به مقام خلیفت اللهی و درک روح خدا راه محرفت نفسه خسناسیست چون دابن روح رو در انسان دمیده خب انسان بایستی به خودش بازگرده بر خود وارد بشه تا روح خدا رو در خود ببینه و باور کنه، کامل روی خودو. و اون اسماء و کلمات و علم الهی رو در خودش درک کنه. ها؟ فهمه در خودش خودش رو باور کنه. خودش خودش رو باور کنه. بنابراین باید بگم ابلیس فقط و فقط و فقط با یک راه و روش در انسان دشمنه. دشمنه معرفت نفسه. دشمن خودشناسی است. به زبان ساده دشمن عرفانه. عرفان با معرفت نفس آ نه و این همون راه همون رو تو فکازانو جنجیریو انرژی درمانیه در بازی وازیو نه ارفون با خودشناسی معرفتونه صرفا برای اینکه خودشناسی که انسان به خودشونشناسی می‌رسونه ها میرسونه انسان از رو شناخته خوده که به خدا در خود میرسه و میبینه که خلیفه خداست یعنی خدا که خدا لاونشاست دیگه او اون جای خدا و خدا واسه جای اون شاسته اینو میبینه ها این اول خودش انسان واسه کوشش تصحیح کنه این بوام رو تا شب کنه تا خدا را بندگی کنه خب تا با خدا چی بشه دوست بشه دیگه تا عشق و خدا رو باور کنه و متقابلا خالصانه او رو بپرسته و به اون عشق ببره و, و با خدا دوستی کنه چون خدا انسان رو برای همین آفرید. خب بنابراین پس ابلیس فقط دشمن این امره که انسان متوجه این حقیقت در خودش نشه باز هدف ابلیس با هر سرانجام نمیذاره اینه که انسان رو از این حق خودش قافل و کافر کنه در حقیقت کافر شدن چی جد قافر شدن از این حق در خود نیست کافر شدن یعنی کافر شدن نصفت به مقام خلافت اللهی خود آه؟ و این چگونه انسان علی کفر نجا تویدا میکنه به واسطه معرفت نفس و سلوک الله همون رایی که میگید اشباه اینه که انسان به مقام خلافت اللهی که همون مقام امامته برای همینه که سوار همه امامان ما و در وحثش امام اول ما خودشناسی بوده اصحاب صفه که اولین دانشگاه هلفانی در اسلام بود همه کارشون خودسناسی بود و پس بس گفت ابلیز فقط دشمن خودشناسی و خودسناسانه برای همین ما در تاریخ میبینیم که یکی تاریخم و رفایل ما و همه اولیا و امامان ها به دست چه ترس شدن لن شدن شکنجه شدن باشایی شدن به دست کسایی که دم از خداشناسی می زدن مثل ابلیس یعنی ابلیس زده ها در واقع کسایی بودن که خلیفه ابلیس شده بودن مرید امر ابلیس بودن همونطور که ما گفتیم چند در پیش ابلیس به خدا و خداشناسی و پرستش خدا و توحید بود که کافر شد پس همین ما در تاریخ می که کسایی که با عرفا با بودی الله با ادمهای ما میجنگن و, می و دعوت دارن و اینا رو مرتد و کافر میدونن همه ابلیس صدا هستند و کسایی که خلیفه شیطانند که با معرفت نفس در جنگل با مقام امامت انسان در جنگ خب. گفتین بریم در بهشت که آدم و حوا دل اونجا هستند و ببینیم که چگونه ابلیس بر اینها وارد شد و اولین ذهن خودش رو و اولین ادامت خودش رو در اونجا پیاده کرد. خب ببینیم ما میدانیم که ابلیس از طریق حوا بر آدم والش شد و این رو مثلا تباه کرد و از رو به توی جهنم کشند از بهشت خارج این ها رو خب چرا از طریق حوا تونستی خورد بخونه یعنی از طریق حوا بر آدم وارد. و اون رو تفرت کرد کرد دوچار نسیان کرد از مقام خلافت اللهی خودش ساقت کرد خلضا از بهشت خارج شد بهشت قلم رو به مقام خلافت اللهی انسانه چرا در بهشت در قرآن داریم در بهشت انسان هر چه اراده کن همون میشه یعنی مقام کنفریکونه دیگه این مقام رو آدم هم در بهشت داره چرا برای اینکه خلیفه خداسته هر چه اراده کن همون میشه بر. حوا رو ما میدونیم که در قرآن داریم که خداوند ها از بدن آدم خلق کرد بیرون کشید استخراج کرد حوا، تا با هم اونس بگیرد اون اولفت بگیرد در حقیقت باید تو گفتش که حوا صورت باطن آدمی در واقع بطرق صورت دل انسانی صورت انگار روح انسان اصلا واضح که رو دیم نکنیم رو اینا استفاده نکنیم اینا صورت باطن خود صورت نفس انسان نفس یه امر باطنیه دیگه بالا همین معرفت نفس علم باطن باطنگراییه حوال در واقع جمال نفس آدم بود نفس یعنی خود آن چی که میگه خودید اون من اون من اون روید فردی اون منیت اون اراده فردی هفوا جمال نقص و اراده آدم بود. که اومده بود. خب برای همین هم آدم عاشق شد. خب همین آدم عاشق کی شد. عاشق خودش شد. برای همین عشق مرد بودن در واقع عشقش به خودشه. چرا؟ برای اینکه هوا خود مرده. جمال خود باطنی مرده. جمال نفس مرده. باید طبیعی عشق. اش... اولا طبیعی بود که, که عاشقون بشه. با طبیعیه که عاشقون بشه. یا عاشق خودش بشه. اون خودشه. خب این منطقیه. طبیعی. خب اصلا قبل از این قضیه باشی. بفرمین هوا اینجا چی بود اصلا. برای چی خرق شد. خب این نظر شخصی خود منه. جای تنبول داره. جای بست د البته در که داریم من این بخشو مصرحی هستم ولی اینجا واقع چیز فار میگم هدف اصلی این مفض ابلیس شماسی شیطان خب ما میگیم آدم خلیفه الله بود جایگاه خدا بود پس قدرت خدایی داشت در راست قدرت خدایی, در خدایی انسان چیه؟ خلقت دیگه خلقت دیگه در حقیقت باز گفت خداوند هوا رو گذاشت تو آدم و گفت خب همینطور که من تو را آدم کردن انسان کردن بس ببینیم که آدم در مقابل هفوا مثل مرد در مقابل زن نیست اونه بس ببنید. وقتی میگه آدم هفوا یعنی لزومن به مرد و زن نیست آدم مقامه مقام آدمیته زنم نمیتونه آدم باشه میتونه نباشه در مقامه مجموعی استفاد و فضایل انسانی هست در واقع خداوند گفت همین که من تو را آدم کردم تو بیا هبارو آدمش رو من چرایی تو آدم کردم از روی خودم در تو دمیدم از صورت خودم به تو صورت بخشیدم از علم، و اسما و کمالات خودم به تو داردم در واقع بیا این آدمش روی یعنی ریشی، بیا در واقع چی رو آدم کن؟ خلق کن اول تو بیا خودت خودت رو خلق کن ببین؟ حالا آره دیگه من تو رو خلق یردم بیا خلق کن حالا. یک برم تو بیا خودت رو خلق کن ببینه بلادی. یا نه انسان چگونه میتونه خلق کنی؟ این علمون باید کجا بیاره؟ علم باطنه دیگه علمشن خدا به آدم نهاده دیگه علمش رو اون نهاده دیگه نه برای همین بود همین ملاکش تاجده کردن پس خب. انسان اهل معرفت نفس یعنی یک عارف میتونه آه خلق کنه این خلقت البته خلقت روحانیست طبیعی هوا و خلقت جسمانی مادی داره پیش و پیش همونطور که آدم هم قبل از اینکه خلیفه انسان بشه اون هویت جانوری و میمونی خودشو داشتی که قبلا قبل از که خلیفه خدا خوشی آدم بشه داشت خب داره اون هویت جسمانی خودشو داره اون هویت حیوانی خودشو داره حالی موجود جان داری خب. و اون داری که از نفس از باطن آدمه خب صورت انسانیشم داره خب تا جمال هوا. خب برای آدم بسیار زیباتر و جوزابتره در اینکه جمال روحانیتره باطنیتره خب, خب آشقه جمال باطن خودش میشه آدم لحبا خب حالا میگه بیا توبار این رو مثل من یا اون تعلیم بده از روح خود خودت در روح بدم آه؟ خب این در واقع همون واقعی عشقه ازشق آدم به هوا همان خلقت جدید عزیلله ها یعنی انسان آدم خودش حالا یک بار دیگه داره به دست خودش داره خلق میکنه خودش رو یعنی؟ تا چرا کنه تا ببینی که خدا چیزی میخلق کرده. گام به گام و خود خدا در واقع داره به او میاموزه که چطور خلق کن به بیان دیگه به بیان دیگه این خلقت خلقت تشریعیه این دیگه خدا خداس دونه آدم رو خلق میکنه یه خلقت ازلی و تکوینی داریم خلقت آنی داریم یه خلقت تشریعی در بلند مدت داریم همینطور که یه کل عالم آتی خداوند در 6 روز آفرید. ولی می‌گویند که روز رفتون، بر روز هست و قیامت کبله شروع شد می‌گویند این ها سالی که گذشته با اینا دیگه 6 روز نیست دیگه. ها؟ این خلقت تشریعیه. از یلا که خدا یه خدا میگه من به یک نظری به آنی گفتم خرش همه چی شد حالا عزیزت میشه گفتش که یک بار دیگه انگاه خلقت در یک آن رو مثل است و فیلم کن کرده باشه خدا که انسان بیشینه نگاه کنه تا قصد معرفت کنه که ببینه خدا چیجوری خرق کرد بله آدم یک بار آنن شده در عزل حامل روح الهی امین ها هست خوب حالا چگونه به روح الهی خودش میرسه بلیم ما این رو داریم ولی دستمون کوتاست ما داتا خلیفه خدا هستیم ولی اون قرار نداریم, نداریم. یک بار دیگه باید این کار کنیم تا آنچه که هستیم رو بهش برسیم به قول میشه چگونه انسان همون میشه که هست چگونه انسان واسه همونی بشه که حس ذاتن هست ظاهرا هم بشه میگه باطن هم ظاهرا هم بشه ظاهرا باطن یکی بشه این هم مقام صفقه که ما میگیم تمام دین برای صفقه یعنی این ذات خودش رو تمام متجلی کنه به فعل درونی ها چگونه این در واقع در واقع بین آدم حواس واقع میوفته باش ببینید که داستان اول ما داستان زن ما داستان اشک زنم ما داستان ازدواج چه تا ماجراهایی من اینکه یکی از مسائل انسانیه الله انسان برای راز بقای خودش مادیوس می‌کنه نه خیر اصلا همه چیزام همینه فرقی به من برای ازدواج ها سنت منه سنت مونی نیچی یعنی دین منه دیگه همه چیز برای منه کسی رب نکنه که اصلا دینمونی نر برسونه دینمونی به چیزی بند نیست اصلا در حقیقت آدم در واقع با هوا و این هشگلاب به تجربه پیدا میشه در واقع شروع میکنه به بازیافت اون خلقت تکینی و ازلیه خودش. آیا و شماش روی خودش رو کشش میکنه؟ علم روی خودش کشش میکنه. مگر رو در خودش کشش میکنه. آها؟ نیچه در قرآن گفته شده که خداوند وقتی که انسان داشت خلق میکرد، او رو بر خودش شاهد گرفت. ببین کیلا چطور انسان گرای وجود نداشتی؟ یویونو شاهد گرفت بر خودش.